فبسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثالث أقسام الحكم الوضعي مبحث سوم أقسام حكمه وضعي وضعي آه بيش بيشمعن وضعي المطلب الأول در این قسمت احکامات وضعی اولین مطلب چیه؟ سببه چون قبلا اشاره کرد که شاره چیزی رو یا سبب قرار داده برای چیزی دیگر یا مانع و یا شرط. خب قبل از اینا همه بیاد سبب رو بررسی بکنه چرا؟ در احکامات وضعی از شما راه بی سافتم که لغتی سبب ل... سبب در لغت چه هست؟ ما ایتو... عربها سببو چی است عرب‌ها سبب رو به چه معنی به کار بردن معنای لغویش چیزی که م... چی؟ ما ما متوصل به الى مقصود ما ده قد باشید سبب به هر چیزی گفته میشه که به وسیلش شما به هدف برسید ما یا به آنچه که رسیده بشه به وسیله اش الی مقصود ما به هر مقصدی شما مقصدت آقا ایران شهره اون چیزی که به وسیلش میری تا ایران شهر اونو عربا بشمیگن چی؟ سبب بالی شما میخوایی بیری بالای علای ساختمان؟ میخوایی بیری با علای؟ با اون چیزی که به وسیلش میری به مقصدت بشمیگن چی؟ سبب نیسن نردبان نر پس سبب هر چیز رویدن که تو به وسیلش به مقصد برسی بله؟ بله جمعش اسبابه سبب مفرد و جمعش اسباب بیگن آقا اسباب و فراهم کن این کار رو انجام بدی یعنی اون چیزی که تو به مقصد بیرسی وسائلشو چی کار کن نمیگه که اسبابشو انسان باید فراهم بکنه و فی الاصطلاح خدا مثلا وفي الإصطلاح أما سبب معنى الإصطلاح هي ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعيا بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه كالزنى لوجوب الحد والجنون لوجوب الحجر فا اذا تف الزنا والجنون انتفى وجوب الحد والحجر دقت کلیت خیلی بحث ساده هست ولی نیاز به دقت و مرور بفرماید معنای اصطلاحی سبب هر آن چه که قرار داده است شرع آن را معرف حکم شرعی ما و شرع معرفن لحکم شرعی آنچه که قرار داده است آن را شرع دین معرفی برای حکم چی؟ شرعی, شرعی. بگونه ای که این حکم شرعی یافت میشه هر کجایی که اون سبب چی شد؟ یافت شد سبب که یافت شد اون حکم چی میشه؟ یافت میشه و سببه که هم نبود حکم هم نیست مثال میزنه کزنا لوجوب الحد مانند الزنا برای واجب شدن حد مانند الزنا برای واجب شدن چی حدش آقا زنا که یافت شد حد یافت میشه زنا که نبود حدی هم لیست حکم حد مثلا حکم حد گذاشه ولی اگه زنا باشه هر دیگه اجرا نمیشه بله حکم حد ولی سبب داره ولی چی داره سبب داره سببش زناه زنا یافت شد حکم که حد یافت میشه زنا که یافت نشد حکم حد یافت نمیده ها کسی که هیچ سبب نیست حدی هم در کار لیست پس خیلی جالب توضیح دادی دیگه نه یا جلود. جنون سببی هست برای وجوب حجر آقا اگه کسی دیوانه باشه حجر میشه یعنی حق تصرف نداره نمیتونه آقا مالشو بفروشه انسان دیوانه مال داره و یا اجازه داره مالشو بفروشه خود دیوانه تباهش میکنه شریعت میاد اینو حجر میکنه کسی اجازه نداره از این چیزی بخره حالا دقت کنید پس در اصطلاح آن است که شریعت اونو معرف حکم شریع قرار داده بگونه ای که اگر اون سببه یافت شد حکم یافت می شود و اگر یافت نشد حکم هم یافت نمیشه. نمی شود مانند زنا حد. اگر وجود داشت حکم حد هم ببینیم وجوده اگر نبود اون حکم هم نیست یا جنون اگر کسی دیوانه بود حج واجب نبود حجری در کار نیست فاذا انتفى الزنا والجنون زماني که زنا وجودنا داشت انتفى وجوب الحد والحج بس واجب بودن حد وواجب واجب بودن حجر منتفی میشه دیگه حدی در کار نیست برای و حجری هم در کار نیست ولی و چه زمان این حد یافت میشه عجام تا عجام بدم تا سبب, سبب یافت و سبب رو تعریف کرد دیگه تبا. تبا و سبب رو چه کار کرد های. 28 اقسام و سبب در شماره 27 بعد سبب رو آقا تعریف کرد حالا میگه که سبب چند نوع داریم اقسامش سوالی برای یه شما آره مثلا حج و خب شما سهب کنید فعلا اقسام و سبب اقسام و سبب اینا رو سبب و خوندید مانه و خوندید با شرط اون موقع دیگه کامل میشه بحث از سبب و بی اعتبارهی فعلا للمکلف او ليس فعلا لهوی انقسم و ایلا قسمون بیگه سبب بردونوه از چه جهت نوع؟ ای؟ از این جهت که آیا فعل؟ فعل مکلف است یا فعل مکلف نیست حالا میتونه سبب فعل خود مکلف باشه مثل زنا میتونه فعل مکلف نباشه مثل زوال خورشید ها از این جهت که آیا فعل مکلف است یا فعل خودش نیست بر چند دسته تقسیم میشه سبب بر دو دستی القسم الاول نوع اول سبب سبب ليس فیلا للمکلفی ولا مقدورا له اون نوعی هست که فعل مکلف نیست کار مکلف نیست و در توان مکلف هم نیست, نیست. و معا هدا اذا وجیده وجیده الحکم با این حال گاه که این نوع سبب هم شد حکم چی میشه؟ یافت میشه به محض این که این نوع سبب یافت شد حکم هم چی میشه؟ یافت میشه فهو امارتون لوجود الحکم پس این نوع سبب اماره و نشانی هست برای چی؟ وجود حکم که دلوک شمسی لوجوب صلحت مانند زوال خورشید برای واجب شدن نماز ظهر و شهر رمضان لوجوب صیام و ورود ماه رمضان برای واجب شدن روز آها رمضان وارد بشه تا روز فرض بشه ولی این ورود رمضان میگن سبب ولی آ این نوع سبب از اون است که فعل مکلف یا نیست نیست در مقدور مکلف هم ولی ببهزیم کومدون حکمه هم چی بیشه؟ بیات ویجوب هم اجرا بیشه بیات القسم الثانی نوع دوفوم سبب سبب هوا فعل للمكلف وفی قدرته كالسفر لعباحة الفطر والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص بیگه نوع دوفوم اون سبب است که فعل مكلفه و در توان مکلف بانند سفر برای مباه شدن چی؟ روزه خوردن روزه آقا چیزی که ما رو اجازه میده روزه رو بخوریم اون سبب چیه؟ سفره ولی این سفر هم در توان مکلف خودشه پس سبب سفر است حکم مباه بودن خوردن روزه است یا خواندن قصر نماز است علی آخر پس نوع دوم دقت داشته باشید نوع دوم فعل مکلف و در توان مکلف مانند سفر برای مباح شدن خوردن روزه و ندى والقتل العبد العدوان لوجوب القصاص قتل عمدي براي واجب شدن قصاص آقا قتل سبب است برای قصاص حکم قصاصی سبب قتل این از کدوم نوع از همون نوعی که در توان انسانه و در اختیار انسانه اگر در توانو در اختیارش نبود که قصاصی در کار نبود خب دقت داشته باشید میگه وهذا القسم باعتباره فعلا للمكلف يكون داخلا في خطاب التكليف فيكون مطلوبا فعله او مطلوبا تركه او مخيرا فيه وباعتبار ما رتب عليه الشار من احكام اخرى فيعد من اقسام الحكم اینجا یک نقطه میخواد توضیح بده انواش توضیح داد از منواش فارغ شد بگه که این نوع دومی یعنی اونی که در توار مکلف و در قدرت شه و کار خودشه بگه این نوع دوم به این جهت که فعل خود مکلفه از این جهت که فعل کیه مکلفه این داخل در خطاب تکلیفی میشه داخل در خطاب چی میشه تکلیف بیشه چون توان کیه؟ در توان مکلفه و فعل مکلفه و مکلفه هم داده شده که آقا این اسبابو فراهم کن یا فراهمش نکن چون در توانشه دیگه از این زاویه در چی وارد میشه در تکلیف وارد میشه در نتیجه انجام این کار مطلوب هست یا ترکش مطلوبه؟ بس اگه بینوش داره ها اگر قتل با ترک بشه یا درش اختیار داره کاری نداری. این سبب میتونه نوع سببی باشه که شریعت مکلف و دستور داده آقا این سبب و فراهم کن یا ازش ترکش کن یا درش اختیار داره در هر صورت این نوع سببی که در اختیار مکلف است و فعل مکلف است و در توان مکلف است بگه این از این زاویه جزبه به چه قرار میگیره داخل در خطاب تکلیفی قرار میگیره اما از این زاویه احکاماتی دیگر رو شاره اومده برش متراتب کرده شاره برش احکاماتی دیگر رو چیکار کرده؟ متراتب کرده جز احکامات جز کدوم قسم قرار بگیره سبب؟ بگه جز اقسام حکم وضعی قرار بگیرد جز اقسام چی قرار بگیره؟ بله دقیق داشته باشید میگه این نوع دو و که همون فعل مکلف و در قدرت مکلفه از یک زاویه جز احکامات تکلیفی قرار میگیره از کدوم زاویه از یک زاویه که در توان فعل مکلفه در ثوانش و شریعت بهش داره دستور بیده که آیا این سببه رو فراهم کن یا فراهمش آقا قتل انجام نده و قتل سبب برای قصاصی پس قتل سببه قتل چیه از اونجا که این کار مکلفه و در اختیار مکلفه و شریعت داره میگه که آقا این سبب رو ترک کن از این ضعب جز چه قرار بگیره ولی از این زابیه که شریعت اومده بر این کار آثار دیگه مترتب کرده که آقا اگر قتل انجام گرفت قصاص هست پس اینجا اومده قتل و سبب قرار داده برای چی؟ از این زابیه جو چی قرار میگیره؟ وضعی وضعی است که کاری رو شریعت سبب برای کاری دیگه قرار داده یا مانه یا شر یا مانه یا شرق پس به این خاطر سبب با هر دو نوعش جز اقسام وضعی هست جز اقسام چه پس ما امروز سبب و خوند خب در شماره ربیس هم یک نقطه خوبی رو در رابطه با سبب ذکر میکنه این رو بیخونیم و بحث و پایان بدیم. از سبب و الاله فرق سبب و علت تو میاره آقا شما گاهی موقع در کتابا ها میبینید یه جایی ببارده گفته سبب یه جایی گفته چی؟ اله. اله. لا هذه جساحكن أجرتكن ما جعله الشارع ألامة على الحكم وجودا وعذما إما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن الأقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم وإما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها الأقل فان كان الاول صبغ علة كما يسمى سببا وان كان الثاني صبغ سببا فقط ولم يسمى و وهذا على رأي فريق من الاصوليين ببینید فرق عله و سبب و دار توزی ده دقت بفرمایید که حداقل این اصطلاح یاد بگیریم بیگه انچراق علامت بر یک حکمی قرار داده حالا چه وجودن چه عدمن علامتی برای وجود یا برای آدم بیگه این علامت دقیق داشته باشید یا موثر در حکم هست منظور از موثر یعنی چی؟ یعنی این که آقا عقل مناسبتش بین این علامت و بین حکم درک میکنه آه؟ خودش مثال بیاره در زیر که خیلی واضح میگرده فعلا صبر کنید میگه عقل وجه مناسبته بین اون علامت و بین حکم و درک میکنه میفهمه علتش چیه فلسفش چیه یا این که اون مناسبت بین اون علامت و بین اون حق خفیه هست پوشیده است، پنهان هست عقل اونو درک نمیکنه حالا این تا جای کار اومد میگه اگر از نوع اولی بود یعنی عقل وجه مناسبت بین اون علامت و بین اون حکم درک کرد هم بهش علت گفته میشه و هم بهش سبب گفته میشه هم بهش علت گفته میشه و هم مثال بیاره پایین ها سب کنید ولی اگر از نوع دوم بود یعنی آقا عقل عقل ما انسان ها اون مناسبت بین اون علامت و بین اون حکم و درک نکرد فقط بهش چی گفته میشه سبب دیگه بهش علت گفته آقا به این سبب شما نواز زهر رو این موقع بخونید ولی ما بیدونیم که ال... چرا عقل درک میکنه چرا چرایی بودنش رو درک پس بهش فقط بگن چی سبب ولی اگر عقل اون مناسبت رو درک کرد و موقع بش... بیتونیم به بی این علامت هم سبب بگی هم علت پس سبب و علت پس دقت داشته باشید اگر عقل در کرد هم بشه علت بیشه گفت و هم سبب. سبب اما اگر درکش کش نکرد چی و لمیوسم دیگه بشه علت نمیگند خب این البته این تقسیم بنده میگه طبقه نظریه گروهی از اصولیون هست حالا مثال شو بیاره؟ روی مثالا دقیقت کنید تا به خوبی بفهمید. و مثال اول مثال نوع اولی یعنی اونی که عقل مناسبت بین علامت و حکم و درک میکنه و هم بشه علت بگن و هم بشه بگن سفر از سفر لعباحت الفطر سفر برای و چی؟ بحبودن خوردن روزه فطر یعنی خوردن الاسکار لتحریم الخمر؟ آقا شراب بودن موغیه. سکران آورد بودن یا مسکر بودن برای حرام شدن شراب آقا علت شراب حرام بودن خمر چیه؟ مم. سکرانه مسکنندگیه از صغر على الاسغیر کوچک بودن کوچک بودن او علت و سبب برای ولی بودن بر کسی که کوچکه ولی داره در تصرفاتش علتش کوچک بودنه بودن ففي هذه المصالح دقیقات کنید این سه مثال رو آورد میگه ففي هذه المصالح يدرك العقل وجه المناسبه بین السبب و دلیل مست چند تا مثالی که آوردید به عنوان نبوده میگه عقل وجه مناسبت بین سبب و حکم رو میفهمه میفهمه که چیه آقا چرا مسکنندگی سببی برای تحریم شراب حراب شراب حراب بودن شراب عقلش از بر میبره نه یا چرا آقا سفر سببی هست برای مباه شدن آقا به هست و علت های دیگه درش هست عقل میدونه اینو بر هم بش میگن علت هم سبب پس بیشه سفر رو گفت علت برای بابا بودن و بیشه بهش گفت سف... سبب برای آ در اصطحات در توضیح دا حالا د صبر می يجيك اشتباه شاطي وجود داره فاعتبر كل من السفري والاسكاري والصغري سببا والا كان للاحكامات للاحكام المربوطه بها ده نتيجه بيجي اظوجايك عقلي جاء مناسبته بيني علامت و بین حکم و درک میکنه در این مثالی که خوندیم دقت داشته باشید؟ در سفر برای مباحبودن فطر اسکار برای حرام بودن شراب و کوچک بودن برای ولایت بر بچه نه دیگه کوچکه که آخر یکی دیگه ولیش میشه نه؟ بله. ها ولیش بودن حالا دقت کرید بیگه در اینها از اون جایی که عقل مناسبت بین این اسباب و بین حکم و درک میکنه شنو چرا این حکم داده شده میگه اینها سبب و علت هستند یعنی سفر اسکار و بچه بودن اینا بهشون هم سبب میگن و هم علت چرا چون عقل مناسبت این حکم و این علتو درک میکنه دقیق داشتید؟ اما و اما به سال دو شهود رمضان لوجوب السیام آقا آمدن رمضان برای واجب شدن روزه دقت داشته باشید بیگه فا ان الاقل لا يدرکو وجه المناسبه بین هذا السبب و بین وجوب السیام بیگه اقل نمیدونه چرا اگر باهر رمضان که اومد روزه فرض میشه؟ مگه عقل میدونه؟ ما ماهای دیگه هم طبق عقل فرقی داره آقا رجب که مثلا میومد اگه روز فرض میشد آیا عقل میدونی چرا این ماه اومده این روز فرضه؟ ولی ما مثلا در سفر میدونیم که علتی که در سفر خوردن روزه باباه میشه مشقت درش هست مزنه مشقته مزنه چیه؟ مشقته آقا گمان مشقت درش هست ها؟ لذا بگیم که سفر عقل راحتی درک میکنه که چرا سببی قرار داده شده برای خوردن روزه در مسافرت در رمضان ولی آیه شما میتونید عقل درک کنه که چرا بعد از این که رمزان داخل شد روزه فرض میشه وجه مناسبتش چیه عقل نمیدونه بابا عقل نمیفهمه بگه عقل درک نمیکنه کنه وجه مناسبت بین این سبب یعنی دخول رمضان وبين واجب بودن روز را وكذلك غروب الشمس شمسي سببون لوجوب صلاة المغرب همچنان مثال ديگه بيگه خرشيد كغروب کرد اي همين غروب خرشيد سبب بيشه براي واجب شدن نوازه ولی آیا عقل ميتونه درک کنه که چرا واجه مناسبت شو درک میکنه نه میکنه ولكن العقل لا يدرك واجه المناسبت بین هذا السبب وبين تشريح الحكم به وجوب صلات مغرب میگه عقل درک نمیکنه واجه مناسبت بین این سبب یعنی غروب خورشید و بین مشروب بودن حکم که وجوب نواز مغربه چیه این مناسبتو درک نمیکنه نمی و علی هاذا بر این اساس یصفا کلم من شهود رمضان و غروب شب سبب فقط میگه هر یکی از این آمدن رمضان و غروب کردن خورشید فقط چی میگن فقط بشون سبب میگن دیگه علت بشون الոչین یک تقسیم بندی ها در اصطلاحاته ولا یسمى الاتان پس آقایون دلوک خورشید زوال خورشید سببی است برای واجب شدن نماز ظهر اون غروبه که برای بله دلوک خورشید سببی است برای واجب شدن نماز ظهر حالا ما میگیم آقا دلوک خورشید دلوک خورشید سبب هست یا بهش میگیم علت هم فقط بهش میگیم چی سبب این تقسیم بندی گروهی هست اصولی و لا یساق الاته میگه به این علت چون واجهه مناسبتش قابل درک نیست بیست و كل علت السبب پس در نتیجه یعنی روختی گیری میکنه میگه در نتیجه هر علتی سبب است ولی هر سببی آقا مال خورشید دلوک شمس فقط سببه بلی نمیشه بهش علت گفت ولی هر علتی سبب پس اما هر سببی علت بیتر و کمسته لکن بله تو تا اینجای کار کافیست جزاکم الله و خیرم